قاهره، مصر، 6 نوامبر 1964 یک اتومبیل با مسافرانش در جاده ساحلی محله المعادی به سرعت پیش می راننده پدال گاز را تا آخر فشرد. مسافران نگران بودند. در آن صبح جمعه از انتک اتومبیل های خیابان یکی بعد از دیگری سبقت گرفتند. لیلیان روی صندلی عقب اتومبیل نشسته بود و به حوادثی که پیش رویش در جریان بود فکر می نمیتوانست توانست آنچه در طول زندگیش بر او گذشته بود باور کند. هرگز آن همه فراز و نشیب در زندگیش را تصور هم نمی کرد. حالا هم فکر نمی کرد تواند از بس آنها براید. سعی کرد در حالت مناسب و راحت بنشیند. با اتومبیل نصر 1300 به همراه ایمان و کمال به طرف مرکز شهر می رفت. نام جالب اتومبیل سبب می لبخند بر لبش بیاید، و کمی از وحشتی که هنوز بابت حضور در مصر در خود احساس میکرد کاسته شود. به نظر میرسید مصری ها تصمیم داشتند همه تولیدات صنعتی خود را نصر یا ناصر بنامند. دکتر جلوی در ورودی زایشگاه ایستاده بود. او مدیر این بیمارستان کوچک بود. این بیمارستان در یکی از طبقات یک ساختمان بزرگ واقع در خیابان تلعت حرب در مرکز شهر قاهره قرار داشت. وقتی کمال عزالدین به همراه ایمان و لیلیان با آنجا رسید، دکتر به استقبالشان آمد و کارش را شروع کرد. ابتدا به سرپرستار بیمارستان که در کنارش ایستاده بود گفت: ها رو به اتاق 110 ببر و همه چیز رو برای انجام عمل سزارین آماده کن. میخوام تا نیم ساعت دیگه اتاق آماده باشه." پرستار کمی تعجب کرد. با آن دو زن که شکم بزرگشان جلوتر از خودشان حرکت میکرد نگاهی انداخت. زنها سعی می کردن شکم خود را با دست نگه دارند. ایمان به او لبخندی زد و به لیلیان اشاره کرد امروز وقت زایمان اونه بعد از اینکه زنها رفتن دکتر به سمت کمال رفت مدارکت آماده است؟ بله پس لطفاً برو به بخش پذیرش بیمارستان تا کارهای پذیرش انجام بشه به این خاطر گفتم روز جمعه بیایید چون شیفت امروز با نبتشی هست که یک کارمند کم سن و سال و اسم مریضتون چیه آقا؟ ایمان محمد عبدالرحمن کمال گذرنامه لیلیان و گواهی اسلام آوردنش را که نام او روی آن ثبت شده بود بیرون آورد کارمند جوان با لکنت سعی کرد نام صاحب گذرنامه آلمانی را بخواند. جوان بی تجربه با دیدن برگه های زیادی که در مقابلش قرار گرفته بود کمی سردرگم شده بود کمال سند ازدواج خود و کارت شناساییش را نیز داد این کارت شناسایی منه. نام همسرم که الان بهتون گفتم روی این کارت ثبت شده. تازه در چهره مرد کمی آثار آرامش حویده شده بود که مجدداً کمال شروع به صحبت کرد و مرد جوان را حیران ساخت. این هم کارت نظامی منه اگه لازم داریم. کارمند به احترام او از روی صندلی بلند شد. ببخشید قربان. من در خدمتتونم. در آن لحظه مطمئن شد موقعیتش را کاملا تصویید کرده است. گوش کن، هنوز برای همسرم بعد از اسلام آوردنش کارت شناسایی ملی صادر نشده. اما اسمش همونطور که میبینی روی کارت من ثبت شده. گذرنامه آلمانیش رو بهت دادم فقط برای اینکه مدارک که شما کامل باشه. متوجه هم قربان. ما نمیخوایم روی برگه شناسایی که بیمارستان به عنوان گواهی تولد برای بچه صادر میکنه، اسم آلمانی مادرش سخت بشه. بله حتماً قربان متوجه منظورتون هستم. خدا این بچه و مادر تازه مسلمانش رو حفظ کنه. کمال پنجنی از جیبش بیرون آورد و به کار من داد. به نظرش کارش با موفقیت انجام داده بود. متشکرم قربان نیازی به این کارها نیست. وقتی گواهی تولد بچه رو به من دادی، پیش من شیرینی داری. لیلیان در اتاق عمل لباسش را عوض کرد و روپوش سفیدی که پرستار به او را پوشید. با پایین آمدن جنین در این چند روز آخر، احساس سنگینی زیادی می کرد. آنطور که انتظار داشت و نگرانش بود، درد آنچنان شدیدی هم نداشت. فقط کمی دلپیچه در کنار درد کمر دائمیش احساس می کرد. تغییر مزاجش تنها چیزی بود که این اواخ کمی درگیرش کرده بود. طی دو هفته، گاهی عصبی، و گاهی خوشحال بود نمیدونست علت این احساسات چیست گاهی خود را آماده اشک ریختن و گریه میافت در حالی که چند لحظه قبل از آن احساس شادمانی شادی و شادمانی داشت و خندان بود گاهی به خودش شک میکرد که نکند به خاطر آنچه که در طی این تقریبا یک سال بر او گذشته بود دیوانه شده باشد نکند اینها علائم جنون باشد و از این احساسش این بود که در این بدن جدیدش راحت نبود به دلیل بارداری حسابی چاخ شده بود. مفصلهایش انگار داشت از هم جدا میشد. استخوان هایش خود را از دست داده بود. خواب او نیز در روزهای گذشته تغییر کرده و حالش را بدتر کرده بود. باید با سختی زیاد سعی می کرد در موقعیت مناسب قرار بگیرد و به جایی تکیه دهد تا بتواند راحت بخوابد. حتی دیدارهایش با ایمان دیگر او را سرزخ نمیآورد. طی ماه های میان آن دو رابطه دوستی محکمی برقرار شده بود که اکنون در شرف پایانی یافتن بود اما تنها اتفاقی که برای خودش خیلی عجیب می‌آمد میل زیادش به نظافت و مرتب کردن خانه بود به طوری که در این مدت گوشه گوشه خانه از تمیزی برق می‌زد ایمان با دست به شانه لیلیان می‌زد و به پیشانیش دست می‌کشید و در همان حال دعا و آیات قرآن را زیر لب زمزمه می‌کرد لیلیان کاملا تسلیم او بود و اجازه میداد هر کاری که میخواهد انجام دهد. لبخند ملایمی بر لب داشت و نسبت به این دوست جدید و بسیار نزدیک خود احساس علاقه و محبت زیادی می کرد. پرستار به همراه دو مرد که یک تخت عمل جراحی را میکشیدند برای بردن لیلیان آمدند. وقتی آنها وارد شدند، ایمان لیلیان را به طرف خود کشید و چند دقیقه او را در آغوش گرفت. سپس هایش را بوسید و بعد اجازه داد او را ببرند. دو مرد تخت لیلیان را در یک راهروی طویل به طرف اتاق عمل می‌کشیدند. ایمان پشت سر آنها می‌رفت و با صدای نسبتاً بلند که لیلیان هم می‌شنید آیات قرآن را قرائت می‌کرد. مقابل در اتاق عمل ایمان ایستاد. دو زن نگاه‌های های پرمنی را دو بدل کردند. با عبور تخت در اتاق پشت سر آنها بسته شد. یک تابلو برجسته بر در اتاق نصب شده و روی آن نوشته شده بود اتاق عمل. کمال و همسرش روی دو صندلی به فاصله کمی از آن در نشستند. کمال نمیدانست چه احساسی دارد. حس میکرد ته دلش خالی دست همسرش را گرفت. دست های ایمان به طرز غیرعادی سرد بود و با رنگ پریدگی صورتش هماهنگ بود. به نظرت ما کار درستی کردیم؟ دیگه برای پرسیدن این سوال خیلی دیر شده ایمان. جوابم رو بده. خب اشکالش چیه؟ اگه اشکالی نداره پس دلیل این همه پنهان کاریمون چیه؟ چیکار کردیم؟ یک بچه رو از مرگ نجات دادیم. مگه یادت رفته اگه ما نبودیم اون میخواست بچه رو سخت کنه. نجاتش دادیم اما این کارمون هم غیر شرعی بود هم غیر قانونی. عبروهای کمال در هم رفت. میخواست جوابش رو بدهد. اول پوکی به سیگارش زد. باید قبل از اطمینان خاطر ایمان اول خودش را آرام می کرد. کاری که ما کردیم به نفع این بچه بود. هر اتفاق دیگه ای اون بچه بدبخت می شد. من می ترسم. طبیعی عزیزم: ما از هر نظر کار سختی انجام دادیم. سکوتی پر از نگرانی برقرار شد. کمال دوباره گفتگو را ادامه داد. سرنوشت خواسته چیزی رو که ازش محروم بودیم بهمون به پس بده. ما باید از این بابت خوشحال باشیم. اما ما داریم با خودخواهی اون رو از کسی که دوستش داره جدا می‌کنیم. سالها بعد که این بچه رو بزرگ کردیم و خوب تربیتش کردیم، تصور کن اون تصمیم بگیره به خاصگاری دختری بره از یه خانواده مثل خانواده خودمون. ما هم میریم خونشون. بعد من به پدر دختر نگاه میکنم و میگم من اومدم اینجا تا دختر شما رو برای این جوان که فرزند خواندمون هست خاصگاری کنم. فکر میکنی اونها قبولش میکنن و جواب مثبت بهش میدن؟ ایمان چیزی نگفت کمال ادامه داد اینجا اگه کسی پوستش تیره تر از حد معمول باشه جامعه اون رو پس میزنه فکر می‌کنی اگه یکی بی اصل و نصب به حساب بیاد باهاش چه برخوردی میکنن ما در همچین جامعه زندگی میکنیم فکر کن یه روز مادر دوستش بفهمه که اون بچه ما نیست از فردای اون روز هم س و سال هاش داشت همون چیزی که تو خونه هاشون بچه‌ی سر راهی یا چیزایی مثل این فوتو قبول دارم و درک میکنم اما ته دلم از دروغی که قرار یه اون باهاش زندگی کنه قصم می گیره کدوم دروغ بازم میگم این فقط یه راز بین زن و شوهر نه کمتر و نه بیشتر ببین ایمان ما داریم هم به اون و هم به خودمون فرصت زندگی میدیم من دوستت دارم و می خوام زندگیمون با این هدیه کامل بشه چشم پر از اشک شد و اضافه کرد همش تقصیر منه که تو همچین موقعیتی قرار گرفتیم متاسفم ایمان رویش رو به طرف کمال کردم دست شوهرش را که هنوز دستان او را گرفته بود محکم فشرد. بعد از حرفهای دلگرم کننده کمال دیگر دستهایش سرد نبود خودت رو به خاطر سرنوشت سازنش نکن اشک هایش را پا کرد بوسه کوچک بر گونهش زد و گفت دوستت دارم و بچه که هنوز ندیدمش رو هم دوست دارم قدمش مبارکمون باشه انتهای راهرو در عمل باز دکتر از اتاق خارج شد و با عجله به طرف آنها آمد. دختر زیباییه. تبریک میگم. نگرانی را در چهرهشان خواند و گفت لیلیان خیلی خون داره. باید بهش خون تزریق بشه. به بخش مرقبت های ویژه منتقلش کردم.